بسم الله بسم شیطان بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم و الحمد لله رب العالمین بسم الله علی سید و رسول الله و آله قیبین و طاهرین المعسومین و و علی اللهم از شد که مرحوم شیخ متحده بحث به شدن ما برای تنظیم بحث اول روایات رو خوندیم البته عادتاً وقتی روایت رو میخونیم هدف اینه که آرون با مراجعه به کتاب وضع رو به اصطلاح در کتاب مشخص رو پنج کن مرحوم شیخ و اده زیادی از علماء ما بحث های حدیث شناختی به این نهری که الان دیگه داریم همه شوشده های ما متحده نمیشدن ایشون در مسئله دوازده شمارهی که دادن برای مسئله دوازده از کردید یادتون در کتاب رو مرگوم شیخ انساری محرمه رو به لصاحب شرایه پنج نوع کرده همتای شرایه شماره گذاری نکرده ایشون شماره گذاری کرد وقت نوع چهارا معامله و اکتساب به چیزهایی که فی نفس حرامه کاری که بینم سهران نیکیشم قشیه مرحوم شیخ این کار صاحب شرایع رو با حروفه که جایی مرتب کردن در شرایطی به این مرتبی نیست بین عدد هم نیست ایشون هم عددش رو بالا بردن هم مرتب کردن پس مسئله دوازده از نوع چهارم نوع اول که اول اونه که نجس بود شرطش بود به سال خایست برش مترتبی شد چهارم اختساب به اموری که فیننسه حرامه، یا مال محرمه. و اولی مثلا اختساب به اموری که نجسن، چون متنجس. پنجم هم که میاد اختساب به واجبات، اون یکی برعکس چهارم که محرمات واجبات. پس مسئله دوازدهم در اصطلاح ایشان روشن شد، دوازدهم از نوع چهارم در اون جاهایی که عمل فیننسه حرامه. هر حرامون بلا خلاف من برای اینکه که آیان اینشارا تقریز جمعی فرمان روشن بشه یه همیشه اجمال کتاب مکاسب و کای رو که مرحومشه انجام بدن هم برای عدار ایشان و هم برای بعضی از نکات متعرض میشه مرحومشه از کردن خیلی دستبندی اونطور برستانوزی ما خیلی ردیف بندی ما رو تبروشنی رو ندارن اما خب اجمالا دارن دیگر باز خودش. خودشون اول مطلبی که ایشون فرمودن حرمت تکلیفی قشه قشه و حرامون بلا خلاف ادعای اجماع کردن ولی اخبارو به بیهی متواطره خب به دو دریل اجماع و اخبار یعنی به آیات مبارکه توسل نفرموندن و همچنین به حکم اقل حکم اقلب هست آیات هم به یک معنای که هلا بعد از میکنی بعد فرموزن ما بعدی از اینها رو برای تبرخ از روایات رو میریم من روایات رو میکنم با اشارهی به کارهایی که در این مدت رو این روایت انجام ده فعن النبي صلی الله علیه و آله و سلم به اصانید متعدده لیس من المسلمین من غشمم این تعبیر لیس من المسلمین آمده ارز کردیم در قیادتون باشه در جلد دوازه هم وسائل هم عورده جلد بیست و احادیث لیکن انی هشام ابن سالم عن ابي عبد الله اما علمته انه لیس ابن المسلم این متن خیلی معروف نیست حالا ایشون روشه اسناد متعدده حالا میگم مرادشون باقولوا ماها نمی جی باشه این رو مرحوم کلینی به دو سند از ابن ابي عمر داره و شیخ طوسی هم با یک ثانیه احمد اشعری از ابن ابي و بفهم مرادش اسناد متعددی باشه ببین بله. این متن شاید درست اما مثلا کلمه حسانید متعدده انسان خیال میکنه که مثلا مصادر متعدد نه یک روایت واحده است و با همین سند همین ابن عبیو من الحشام انبی با همین سند کلینی نقل کرده من قشنا فلیسه بنو و این سند لیسه من المسلمی من قشهام اثر پیش ما مصادر صحیح هست لکن متن معروف نیست متن معروف این نیست بین اخل سنت هم این نیست من قشنا فلیس مننا هست فلیس منی هست فلیس به مسلم هم هست این هم هست اما لیس منی مثلا در سعی مسلم، لیس مسلم در بعض زبادت ماست مشهورترش همون من و من قش لیس مننا هم هست من قشنا نه من قشه این کار خوبیه یعنی به نظر من از الان که شما مکاسه به جلوتون بودشتی این روایاتی ایشان رو در حاشیه متن و سندن بنویسید که بعد حالا تقدیر فرموندید مراجعه فرموندید براتون کاملا مفیده متون مختلف روایت و اصانیدش و ارزیابیش. و, و فی روایت ایون مراد ایون اخبار رزاست و اصانید حالا میان به اصانید جابجا شده قال رسول الله ليس من نام من غش و و این دو سه نسخه از کتاب صیف و رضاشون شاکن صندت متح بود. این کردیم در زمان عرضدا ضا تقریبا به نظر من از سالهای سر نه پنج شدی که تاریخ از اهل سنت بیشتر از امام رضا، مجموعه احادیثی نهارو کردن مثلا 10 صفحه 20 صفحه 15 صفحه 35 صفحه،, صفحه و با سند هم هست از رضا نبی هم آبائه و از کردیم اینها مجموع اشکالان موجود داریم اونایی که ضعیف هست و غیر ضعیف و همینجور چیدی شاید به زند من از رو بین 70 تا 80 تا داشته باشیم و از هیچ امامی اینقدر نداریم اون حسرت به امام رضاست و تقریبا می شود همه سنی هم یا اگرم شیعا مثلا سنی که تمایل به اهل دارن اینجوری نهال شیعه شیعه خود ما از اون شیعیان خالصی که ما میدونیم کسی نداریم و کردیم بیشترین قسمت اینها امتظران خود اهل سنت رو بردن. در مسادر زیدی هم هرچون زیدی خودتون کسی میستن در مسادر اهل سنت زیاد آمده اصلاعه متربید آ و در مسادر ما هم از اونجا منتقل شده و بیشترینش الان تو مسادر ما تو اون اخبار رضا مرم صدوقه و هیچیش هم در کتاب کافی نهیم اینها در کتاب کافی نهیم و به ذهن میاد که کافی رو میتونست اگر راست باشه با یک واسته یا دو واسته از امام رضا نهار بکنه که نهار نکنه یه چیز دیگه هم که خیلی تحجیبه حالا نمیتونه چی بوده چون خود سنت. این این میشنن خوب اشکال کردم حتی مثل کاملت زعفای نعدی شاید دو صفحه سه صفحه از این روایت هزاره زار رو آورده و مثلا متون نیست که مثلا هر کسی مثلا به نفشه رو بکنه این طوره یه خیلی بعید رسول هم چند من به نفشه این طور یا مثلا فلا یه مدار آهادیسی رو آورده که اینها در متون دیگه پیش اونا ثابت نیست من مستبعا هم مثلا به نظر میرسه که این تعابیر ما رسول الله باشه به هر حال اون که بین بین اهل سنت خیلی تعجبه امیشه نشونم اسم نبود اینا نبو نکردن خیلی عجیبه اون این میگه چرای مصیبت بالا اینه اگه بنا بوده که این نامه ها و این مجموعه که کتب اهل سنت مثل میزان و اعتدار دیگران ریجا نوشتن فلان دفو نسخه تن علیرضا له جزء تن علیرضا له صحیفه تن علیرضا و کاراس تن انه... عناوین مختلف داره علایانه یعنی این روایات ال عیون دو سه نسخه از همین صحیفه الرضا است حالا آیا واقعا اینا رو ما نسخه بدونی یا هر کدوم رو نسخه بدونی یه شری داره اینه ایشون نوشتن اسانید صدق اسانیدش حالا من نمیدونم چجوریه شو میگم خیلی اطلاعات دقیقی ما نداریم از راه ها به ما رسیده و در اون اخبار رضا ما رسیده اعتماده بر این ها الان خیلی مشکل به لحاظ سندی مشکل داره این مال ما اینی که ایشون نقل کرد چون محوم شیخ نقل نکرده اما این لیث مننا منغش مسلمن این در اصالی دهر سنت هست خوندیم از کنزر امال براتون خوندیم همین متن هست لیث مننا منغش مسلمن او وره و او ماکره لیکن عرض کردیم که من نقطار میگم برای که بدونیم چی داریم و چی میخواییم چی داریم الان الان ما این مقدار از اون اخبار رضا داریم لکن این مد در مسادر آمه هم آمده همین مد ماکره و وره شما در حاشی اگر در از اداره رو پرمهیم حالا غیر چرکی به کتاب اون اخبار رضا این مثل به اصطلاح در کتاب احل سنت هم هست اینجور نیست اما در کتب ما فعلا همینه یعنی کتب ما به صحیفت و رضا منتقی میشه مسادر ما به صحیفت و رضا منتقی میشه حدیث بعدی چون ایشون فعلا تیمونن میکنیم ما هم ادارم تیمونن تعلقا هم و دراستا هم و تحقیقا و تنقیها هم توضیح میدونیم حدیث بعدی و فی اقابل اعمال عن النبی من غشت مسلم ثیبین او شریع این حدیثی است که دیروز خوندید منتهی میشه سندش به ابی هریره و ابن عباس یه خطبه طولانی است اونها آخر خود مثلا خطبه بر نبی بالمدینه به من گفتن که در کتاب دیاس که بحث شده دام حکم کردن بر موضوع بوده منم تو ذهنم همین بودم اما الان مسئلهش تو ذهنم نبود واضحه حدیث که واضحه که آثار جعل داشت واضحه به هر حال این حدیث دیروز خوندیم و عرض کردیم این حدیث رو تحقیق کردم. سه اش رو در اینجا آوردن در واقع قش یک قطعش مسلم به قش میکنه یک قطعش چیز دیگری مراد این قش ما نیست این چیز دیگری بله و من اخو... این آورده ایشون دو سه قطعش ایشون در اینجا مرموم شیخ توسی و شیخ انساری آوردن پس این یک حدیثیست امتا خود شیخ انساری یعنی مثل مالا ابو غاربای ابن عباسه و این عنوان آخر خواست خطباها نبی بل مد درحال حال این روایت قابل اعتماد نیست آثار چه البرش خیلی واضحه و وفی مرسلت هشام انعبی عبدالله عليه السلام شاید نصفه ایشان اینجور بوده اونی که الان در کتاب کافی هست او بیسل نه هشامه بی نه هشام این او بیسش افتاده او بیسل نه هشام انعبی عبدالله علیه السلام نهو آل رجل یه بی ادقی درسته این مطلب کشو نهاره فرمونده البته این عنوانش این جوریه. ان ابی یا ابی یسار که او باشه ابی یسر هشام ان رجولن من اصحابه این مرسلشونه ما لا که در کتاب تهذیب در همین باب جلد هفتش در باب رج داره روا ابی یسر بن هشام ان ابی عبدالله این مرسلش اینجا مرسل نیست اما شیخ به نظر ما تریمی به اوبیس نذاره فکر نمی‌کنه احتمال دارم شیخ همین کافی جلوی شود از کافی بر حال حالا اگه کسی بگه نه چون شیخ قده و ربا اوبیس هشام توی ذهن من هم هست که این که قدیر نه این که تو ذهن من توی آخر کتاب تحذیر تریقش به اوبیس نذاره اما احتمال میدم توی فهرست داشته باشه نگاه این اباس ابن هشام که با بن هشام بعضیشون ذکر و ابی سل یکیه هشام به نظر تو فهرست صحیحش داره اما توی تصدیق مسلم نداره علیه حالا این اینکه این روایت مرسله یا مرسل نیست. اما هشام نیست، ابی سل بن هشام بله نقلش در بعضی از نسخ عیس بن هشام، بله عیسا باشه اما و ابی و لم ارسال سند حدیث معتبره در کتاب کافی معتبره. مشکل نذاری. با عوضیت از نشام ناشرین در اون کتاب نواده شیخ داره نجاشی فهرست شیخ میم تو زهنم این زهن, زهن آدم داده معلومات هیچه نکنم به زهنم بود که کتابیشان تو فهرست تاریخ داره اما توی مشیخ قطعا نداره چی فهرست دخونی طریقش؟ اخبران از در تومنتهاب نام احمد ابن محمد بن حسن احمد بن محمد بن حسن بله پسر ابن الولید این احمد بن محمد پسر ابن الولید. این اسمی ناسو نبود مثل اینها باشه چون از پسر ابن از پدرش ابن خود این احمد کسی بشه خودشون نداره خود احمد پسر ابن الولید. پدرش اش اما پسر ان ابن معروف خود این است پسر ابن قومیه از اینجا منتقل میشه به قوم سن عوی بازم قومیه ابن ولی بل محمد ابن عبدالقاسم محمد ابن عبدالقاسم معروف به بندار این از مشایخ و بزرگان و نسبتی هم با مرحوم برقی داره خواهد ان البرقی باید باشه بعدش از محمد ابن عبدالقاسم سیرسی او رسی بره به استاد برقی این ضعیفه محمد عبدالقاسم سیرسی همون کوفی معروف به ابو سمینه که در عبارات به ما ما بانونه اکزب با و اصحابونه اشهر و اصحاب برکز و کذاوی ما در اصطلاح اشهر و کذاوی ما نه همین شخصه محمد ابن علی سیرفی یه طریقه دیگه هم داره خب بفهمه ابن ابن حالا متیله متیله متیله متیله ما محمد دفعی زفرین کریم چیه المحمد. چند جور نوشتن بوسیقه نداره بفهم. بفهمه محمد بن حسین بر حسن بن علی انت این حسن علی کوشی همین جایی است که تو این سند کافی واقع شده تو سند کافی حسن نحوی حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره این علی عبدالله نمیر است الان که ما این سند دوم خوبه اگر اول سندش اشکال نشن بقیه سند خوبه ولی اول سندش خالی از اشکال نیست به هر حال این روایت حتی به طریق شیخ طوسی قیافتش نشون میده که نسخه ای که از این روایت بوده مختلف بوده یا در نسخه مرحوم کلینی ارسال بود در نسخه منشید نبوده. روی مبانی ما مشکله اینم روایت بعدی ایشون. و فی روایت سعد الاسکاف عن ابی جعفر علیه السلام این مطلب خود سعد اسکاف توصیف شده به نظر ما ثقته شامل سعد بن تریف الاسکاف الاسکاف یعنی کاتبو ازرا سیتی کاتب شده میشه یا اسکافی لکن قبلش ابو جمیله هست که ابو جمیله واسه شوشان نیست مشکل داره ازا این روایت سعده اسکاف سرن ضعیف و اما خود مطلب که پیغمبر در یه ای کسی قضا ظاهرش یه بود کالایی که زیر چیزی دیگه بود اینه که پیغمبر فرمانه ما اوراک الا غجمعت خیانتان و غشندل المسلمین این مضمون در روایت سنیان هست خود مضمونش هست در روایات ما منحصر به اینه ما غیر از این نداریم در روایت ما در روایت معروف خود به ما منحسر به اینه این هم به لحاظ سندی مشکل داره و اگر کسانی قائل به همون بحثه فهرسی بشه چون از کتاب محبوبه خود روایت از کتاب محبوبه از عبی جمیره ام فعدل اسکار اگر دوییم مثلا کتاب محبوب بسیار کتاب خوبیه قابل اعتماده من این توضیحات رو اعرض رو کنم پروشن بشه و ر این روایت موسمن بک در کتاب کافی با سند آمده توی تجازه داره که زعیفه شیخ توسی هم داره وره با موسمن بک این احتمال میدیم باز از کافی گرفته و در وسائل هم اشتباه ناشته وره صدوق هم موسنبق. اشتباه مال وسائل اشتباه بر هرها روایت موسمن بک اینه که آقای خویی هم اشکال میکنم که روایت موسمن بک سندن زعیفه. این صح کافی ضعیفه اما انعمل سلام در طریق شلا به طریق کلینی ضعیید. ا اول حسن عده سلام از نه اخ دیناارت منندنانییر محصووط بهنیاده مقطع او به نسبت روات برون و معونشه نقله حتی لا یا با بهشه انفیه ق بعد ایشون ص قول هوفییه قشون جبلت اون اگه خود را که اینجوری میخونه که حتی لا یوباء به شی فيه قشون و ضمیر فی لا یوباء راجعون ال دینار حذران دینار رو تو چاه بنداز حتی لا یوباء به شی این دینار به چیزی فروخته نشه فيه قشون مرجوم آی ایرانی در اینجا اعتراض میکنه به شرطی خلاف ظاهره که لا یوباء یعنی لا یوباء به دینار برگرده. و اصولا با دینار یوشترا نه یوبا بعدا میفهمن در بعضی از نسخ حتی لا یوبا شیء فی قشون نه به شیئم چون یکی این نقطه باشه دیگه این کلام شیف انساری یه دو سه صفحه‌ایم مرحوم آقای به اصطلاح آی ایروانی گفت یک توضیحاتی راجع به این مطلب نوشتن راجع به اینکه این, این استزهار از کلمه لایوبا به این درست نیست و خوب بود هم مرومی روانی هم مرومی شیعه دقت بیشتری بکنم اصولاً در این نصفی که ما الان داریم کلن بگون استثنا در نصفی که الان در جهاره حدیثان نقل کرده در تمامشون لایوبا شیعه اصلا نصفی لایوبا به شیعه نداریم احتمال در بعض از کتب فقیه آمده ما این رو چند دفعه ارز کردیم متاسفانه نقل ها و خیلی روی متن کار نمی‌کردن چون اعتقادی نداشتن به این, این, این که میگه شال صفحه آقای ایروانی نوشته شیخ هم اینجور معنا کرده زمین لای هم به هم بدینار خب اگر اینجور نباشه حتی لایوبار و با شیء چیزی که مخشوشه فروش این این کجا لای و با شیء ان فی قشرو چون به این جمله لای و با شیء ان اردبیری تبعا کردن در بحث آیده اونجا متعرضش میشه پس این روایت رو که ایشون یک توضیحی داده و مرووی روانی هم اشکالی کردن نه توضیحی ایشان برسته نه اشکال آیرا ایشون نوشته است بعدن مثلا نگین تا اونجایی که تو جمال احادیث بدون استفاده در هیچ نسخه ایشون نقل نمی کنه به تمام اتمام نسخه تعالی و فی و فی روایت هشام بن الحكم قاله کن تربیه اصابروری این خوندین سرنش معتبر اشکان و فی روایت الحلبی قاله این هم معتبره و روایت الاخرى این هم سرنش معتبره و روایت داوود بن سرهان این هم سرنش صحیحه که اون قصه کپتان و رسه یه به اصلا مشک و مشک تر و خوش بیدن این راجعه به روایاتی که مرحوم شیخ عطس الله و در جهازه این دو تا روایت اخیر ناظره به ها که خوندیم تو دیازش دادیم من تکرار نمخواه بکنم من مخواهستم آیون متلق باشن لفتی روایتی مخواه بررسی کنم کدوم ها قابل عرضش هم و کدوم ها مشکل داره از اینجا سم که ایکاش به اولو خط سیاه میزدن و عنوان میزدن شیخ وارد بحث تخریق موضوع قش میشه پس در حقیقت اگر بخویم کلام شیخ رو از اول مسئله تخصیل بندی بکنیم یک حکم قش تخریفن و نه الگش حرامون بلا فلا دو تخریق معنای قش قش این چی؟ اون قشی حرامه چیه؟ این از اینجا ایشون بله وارد شدن این شافی که در هر صفحه 276 78 در حدود دو صفحه راجع به تأخیرش صحبت می‌کنه سم انفی جام المقاصد ذکر فی الغاش این ذکر با اند جو میاد از اینجا وارد بحث حکم وضعی میشن پس از اول خوب دقش بکن، چون میگم عنوان نداریم شما میخواییم عنوان نداریم تکتاب خودتون که راحت تر بشید. از اول مسئله سانیه اشهر که ایشون وارد شدن یک سه تا عنوانه حرمت تکلیفی حکم تکلیفی قش که رواهات هم بعد از این جهده بردن دو سمه این ظاهر الاخبار بیان موضوعی قش تقصیر قش قش چیه و حدودی رو که در قش معتبره دو سه سمه نفی جامعه المقاسد ذکر فرقش به ما یخبا حکم وضعی قرش آیا معاملهی که در این قرش واقعه میشه باطل هست یا ای نه این راحت میشه این که این کتاب چجوری مرموم شهر انتصاله ها نفسه نوشته و متاسفانه لچاب هم این نکته رو مراعات نکردن من در این حالی که کتاب هم بعض از نکاتی که الان برای بیرایش کتاب های قدیمی یا ها کتاب های خیلی معتبر خیلی مهمه این نکات هم گاغایی در اصنا عرض می این این راجبه این قسمت و اما در موضوع ایشون ظاهر اخبار رو کان و غشت به ما یخبا این خب مسلم یخبشت دیگه چیزی که مختی میشه شه که آب رو چیز بریزن توی شیر بریزن نگاه من نمیخوام بقیه شو خدا آنشون و اما مزج و خلف به مالایخفا که اکثرن مثلا فرض کنید گندم برنج تایلندی رو با برنج داخلی با هم مخلوط بکنن که انسان نگاه بکنه نفهمه خلایخفا این میگه قش نیست ل عدم انصراف غش الی بعد همون رواتیری که خوندیم گفتم دو سوره رواتیری راجع به موضوعه بعد بعد یک نکته ای رو متعرض شد یعنی ببینید ما در تحلیل یک مفهوم برای مفهوم تصوری باشه هی نکات رو متعرض میشیم متعرض یک نقصی شدن آیا در غشت معتراره که فعل من باشه یا نه ولو فعل من هم نباشه قصد رو میکنه فرصوی من یک جعبه سیب از یک دکانی گرفتم میدونم نصفی زیرش خرابه نصفی بالاش خوبه من انجام ندادم. بله و کذالک آیا دردش معتبر هست که مثلا بایع هم بدونه اگر بایع ندونه یشتر از کونه همه ما لا یعرف الا من قبل البایع ولذا این نکتر ایشون چیز می کنم فیجه اعلام به لعیب بیر خفی آیا لازمه این؟ بله بل ازا فلات هذل روايات على وجوب الاعلام ال ای العيب ال من شأنه اتفتن له هم بگه آقا نگاه کن برینج به دقت نصفش مثلا تایلندی 20 درصدش تایلندیه باقی مثلا شمالی من یک نوکی در اینجا یادم رفت حالا متعرضش بشن ما معتقدیم که در مثل این جور مسائل حالا اینو می‌ذارم تو بحث تخریجش حالا باشه خیلی ثم ان بي قش المسلم انما هو ببي المخشوش ما تلاف فرقه بین انیقون الاختشاش به فعلی او بغیره حتی اگر به اختیارش نباشه مثلا یک جعبه سیب داشته گذاشته که بفروشه پیش باران آمده بعد از یک روز نصف پایینش خراب دستیشان رو بوده باران خراب کرده این هم اگر بیان نکنه غشیه این هم فرده دلی. بعد ایشون میگه که و آیا چیزی که فی نفسه ملتبسه خودش اصلا از درختری کندن نصف شرابه با ایشون میگه نه بعد ایشون برمیگرده که نه ممکن از یه جموع یه روم علیه اظهار و مایده لعلا سلامتی بیندار زارم که این مراتب ما یک اصطلاح شرعی معیده نداشته باشیم چون من یک توضیحی بعد اینشالله میخوام عرض بکنم میگذاریم همون جایی به تو بزاره ایشونه بعد میگه که اعتبار به قصد تلبی سلعه مشریه. این اعتبار بینه و که ظاهرا این قصد نیمیخواد قصد قصد نیمیخواد سوامان کانر عیب خفیه نم جلیه ایشون پرمونده قصد انصافا قصد جزو امور قصدیه نیست لا به کتمان این مطلقا این یک قب او, او به کتمان خصوص خفی رن رمی اقصد بله و که این طور نیست بله این مطلبی که ایشون نروف پرموند درسته بله ایشون میفنید یوم که الانیوغال في صورت تعیب المبی به خروجی از مختزا خلقت اصلیه به عیب خفی او جلی یوم که الانیوغال این نلتظام البایه به سلامتی هنر علم، علمی به غشن للمشته اگر میدونه که این مثلا از به این حیوانی مخبط بفروشه میدونه که از خلقت اصلیش خارج شده این به اصطلاق غشن ورسته بخونه میکنه انصافش این مطلب که قسمانه ما همین که بدونیم این چه سالم نیست اینجا در غشتی برای این مطلب این پروگیره که ایشون در اینجا آوردن راهی رو که ما رفتیم غیر از این راهیست که ایشون رفتن ایشون راهی رو که رفتن رفتن دنبال عنوان غشت دنبال بخی ایشون دنبال عنوان غشت رفتن ما توضیح داریم اگه یادتون باشه وقتی کنزل امال خوندیم گفتیم ما مراجعه میکنیم به مجموعه روایات روایاتی که توش غرر هست روایاتی که توش لاخلابه هست روا... مجموعه روایات و احساسی که انسان از مجموعه رواد داره ما ممکن اون نتیجه مجموع غیر از اون مقداری باشه که تحت عنوان کلمه غش باشه اینو خیلی دقیق بکنیم بگم من هم بگم. بعد یه دفعه ما فقط دنبال کردن قش میریم ممکنه قشق با اون مجموعه‌ای که به دست میریم اون خسوم منوشی باشه این دلقصه بکنیم این نکته فنی رو و از کردیم بحث قش این رو مرحوم شیخ ننوشته. کاش که این رو مرحوم شیخ میوردن. بحث قش رو ادهی در بحث عوائز دادن مثل بسلم در کتاب ایمان آورده. ظاهرا به وایات قشق و بعضی از روایت قشم ناظر به این معنا هست اما ثابت نشده انصافت تک مشکله و روایت قشم ناظر به باب به اشرا و معاملاته علایه حاله در باب معاملات ما یک توضیح رو ارز کردیم که ایشون بیه بلا خلاف و اخبار بیه متواصله این توضیح رو ارز کردیم که روایت قشم با مجموعی دیگری از روایت ناظر هستند به اطلاق آیه مبارکه که تجار در همه تراز و مثلا ایشان قبل از اینکه وارد حکم وضعی بشن حالا میخواییم عنوان بذاریم چهار قسم یا پنج قسم قشه نوشتم سمه امنالقش در تحقیق موضوعش یکونو به اخفایل ادنافل احلا خوب رو در بد مثل که بالا گندومو خوب بگذاره پایین گندوم بر او غیر المراد مراد این دوم یا اونی که مطلوب نیست و اونی که مطلوب مثل مثلا آب توی شیر بریزه سوم و به اظهار صفت جیده المفقود واقعا مثلا این حیوان پاش شله. یه جوری پاش بسته وقتی را بیستاد که پاش کامله وقتی که میگیریم اینه نه این پاش شله این که صفت جیده یا مثلا فرصویم مثلا به این که یه چیزی رو بخواد بفروشه خیلی رنگارو بش میزنه از مصارف فارسی است که گنجوشی میگه در می به بهلسونه قناری میفروشه یعنی ظاهرش نشون می میده مثلا یه چیز خیلی خوش رنگ یه قشنگی اما در واقع نیست و به اظهار استفه این چند تاش رو سه تا و هوت تکلیز او به اظهار شی علی خلاف جنسی این چهار تا کبیه یه چیزی که رنگ طلا داره به اسم طلا فروشه پس مرحوم شیخ بعد از اینکه یک تعریف یارم تعریفش در باب قشت خیلی دقیق نبید. یعنی به این معنا که ایشان تربید فیدا کرشه تربید زیاد داره آیا قصد تلبیس در قش هست یا نه بعد وارد اقسام و چون مخ... اقسام انجام دادن متعرض کلمات ازی از علما شدن در سهت و فساد در آخر مسئله که اینجا در این کتاب ماسفیت 284ه فل اقواه اینه زنفل مسئله سه حتول بیفی غیر قسم رابه چهار قسم کردن در چهارم که مثلا چیزی که رنگ طلا داره به اسم تلا اونو گفته باطل بقیه رو گفتن که حالا یواشاشون هم یک مروری محر برش میکنه در جامعه المقاسز این مطلب ایشان این مطلب مطلب خوبیه ایشون سعی کرده اشاره میکنه. و چون بعید بودیم حالا شیفت تبع فرموده اشاره بکنن که مثلا در قدم اصحاب ما بحث حکم وزیعی رو ندارن از کتاب جامعه مقاصد که قرن ده همه ایشون وارد حکم وزیعی شدن سمه این قیجامه المقاصد ذکر وجهین فی سه حت و فساده هم از اینجا وارد حکم وزیعی میشن و اینطور ایشون ادعا میکنن یعنی ادعا که نمی کنن که متاخرین از خواب ما از قرن درمان متعرض سهت و فساد شده نقطش رو هم این گرفتن من حیث و ان المحرم هول غش و, و مبیعا اینون مملوکه یون تفعابه ها این بود در اون زمان خیلی متعارف بوده رو به هر حال ولو آب رو تو شیر ریخته به این قیمت داره چون قیمت داره لذا معامله اون درسته مالیتش خارج نشده نهایت عنوان قهش حرامه و بناشون به اینه که اگر عنوانی که محرمه به خود معامله نخوره به جهاز دیگری بخوره اون موجب پساد معامله نمیشه قصد شریع مخلوط کردم اینه که عنوان نیسته نبتون در معامله دار. درسته برم مخلوط کردم آب رو با شیر این الان شیری که توش آب هست این اینان مملوکه پس برای بر این معامله درسته. آبا فوقش مثلا خیار داشته میشه و من اندن مقصود بلبه حوال لبن دقر کردیم مقصود شیر این هم که شیر نیست ول جاری علیه عقد حوال مشوع این همون ای که معروف بود ما و غیل هم یقصد و ما لم لن یقصد پس برابر این مقال در خود جام مقاصد یه مطلبی رو از کتاب ذکرای شهید اول عبرده او دقت بکنید؟ در جامو قاصد یه مطلبی رو از ذکرای شهید اول آورده سعی کرده اون مطلب رو در مانع لطیفی به بکنه اون مطلبی که در ذکراست در باب جماعت رقه به قش نداره کی هم اوردم داره پشت سر زید خون گفت من پشت سر این امام جماعت که امره نماز رو بعد من منوشو زید اشاره کرد گفت این امام جماعت قصد که کرد قصد زید کرد برنانشو امره از کرد این سابقا ای از این خروع ما در حقیقت در کتب اهل سنت آمده خود این مطلب ببین الان اینجا مرحوم نحوه استدلال و استزها و سیر رو براتون ارزبه کنم مرحوم شهید اول اینو در ذکر در باقی سالت جماعت ورده شهید اول قرن نوامه مرحوم صاحب جامور مقاصد محقق کرکی سعی کرده از اون کلام شهید اول در ذکره بکشه در ما نحنفی. مثلا گفته پشت سر این امام جماعه شه زیده نماز میخونم بعد من شنخص دیگری اینجا هم همینطور میگه این شیع خارجی که شیره میتروشن شیع خارجی مشروبه اونی که عنوان برده شیره شیر با مشروب صدر نمی کنه لقدر کنی چرا که مرحوم جامون مقاصد همون مطلبی رو که شهید اول توی باب ج... ساز جماعت ورده در ما نحنفی داده من چند دفعه ارز کردم یک سنخ مسائل اینجوریست که شهید اول و شهید سانی از مسادر آممه گرفته در مسادر آممه این رو در کتبی آوردن که ما اصطلاحاً به شواهد فقیه میگیم ما اصطلاحاً الان این کتبو که از مشایخ ما هم برماید بزرگی دارن بحثای قوائد فتیه در کتب احل سنت اسم اینها علاشباه و نزائره این خود این ها این خودشو عنوان قرار داده وقتی یک موردش شهید اول در ذکر آورده چهار ما مقاصد گفته قشم به اون تطیر میکنیم اما در کتب احرس سنت روشن شد طارق بن مثلا ما علی اشباح و نظار چیزی که نهاتین همونجا داره تو اواز بحث اشاره این رو در اونجا آورده در, در کتب احرس سنت در بحث علی اشباح و نظار مثلا ما علی اشباح و نظار در ذوی ما در اون چیزی نیست اون جزو قواید فقهی نیست به هر حال ایشون عبارت ذکرار نقل میکنه که در ساز جماعت ایشون میگه ان فلحکم و نسلهو مالو قال به اتخه ها در فرست اداهو همارو اگر هازار نظر بگیریم خبه هازار اولاق اولاق مالیت دار درست اگر عنوان فرست بگیریم که ایشون نیست و جعل من شاد تردد تقلیب لی اشارت اولوه هست از کردم در کتب اشواه و نظاهر این بحث آمده در کتب اشباح و نظائر اصطلاح اصطلاح مند میخوام میگم مثل قواعد فقهی ماست یعنی مثل ما که میگن اما خیلی بیشتر درک به قواعد فقهی ما نداشت یاد نکنه من میگم اشباح و نظائر جلال دین سیوتی چه قواعدی رو گوزو می‌ره؟ اصل قواعد فقهی که ما نوشتیم مثل کناهمونا نه اونا جور دیگه نوشتن لكن ایده از مسائل و عنوان اشباح و نظائر آورده یعنی مرادشون از اشباح و نظائف مسائلی که در فقه کاربورد داره اما کاربرد زیادی نیست و نتایجش هم جزئیه به خلاف اصول یعنی چیزی ما بین مسائل اصولی و مسائل فقهی یه چیز وسطی رو پیدا کردن اسم اون رو اشباه و نظائف ما با یه توضیحاتی جزا قواعد فقهیه گرفتیم این کلامی بود که مرحوم جامال مقاصد گفته بود ت جا مقاصد مسئله رو برد روی همون مسئله معرووط تا آل اشاره گاهی اینجوری گاهی میگن, میگن تارزل ان عنوان و معنور عنوان که کرد گفت حاضل حار عنوان حمار داشت. ما هم فرست بود یا به مثال که برگ دقت کرد معوم آقای شیخ انصاری میگه اگر نکته این باشه پس شما چرا در خیار امغال به خیر بود اونجا بگیم فاسده و ما ذکره من وجه صحت جارن فی مطلقه ای لان المقصود هو الصحيح ما واقعا لم يقصد و ما قصد لم يقصد چون وقتی کتاب خریده کتاب صحیح خریده قصدش صحیح داشته این کتابی که الان شما بهش دادیم این کتاب فروسته این ناقصه این معیبه پس باید بگیم فاسده و جعل هو من باب تعارض اشاره و الوصف ممنیون در این یک و بعدشن اینی که از باب تعارض اشاره و الوصف ارادت صحیح من عنوان نبی باید بگیم مرادش صحیح فَيَكُونَ قُولُهُ به هَادَ الْعَمَ بعد تراییان نکونی اعما به بنزلت قولهی بِعْتُوكِ هَادَ الْبَصِیر اردیشون باید بگه که ما یک تعارض وصف و اشاره داریم یک مسئله سهت و فساد داری این دوتا رو اگر شما یکی بگیرید باید در هر دو بگید این دو وجه میاد چه صحیح مثلا یک وجه برای سهت و فساد و ایشون میگه نه نقطه. و درست هم هست. این مطلب شیخ درسته حالا در خلال بحث ها روشن میشه ایشون میفهمون نه این نیست البته مرحوم شیخ هم کم دوتی فهمونده هم بحث سراسی و معی گذر تارز بحث اشاره نیست. هستم خدمتون حالا برها روشن میشه مطلب ایشون میتونم نه این طور نیست در باب سهت و فساد بحث تعارض آرز و اشاره نیست در باب سهت و فساد اون چی که مطرحه اینه که ذات اون شی مبیع سهت یک وصفه یک نکتهی و در روایات که ما آمده من پیروز این توضیح دادم در تعبد آمده که و تنها وستیز که سمن بر اون مقصد میشه اینو ما سابقه هم توضیح داریم این یکی از فنون باب مکان سرزی میخواست اینجا بحث بشن ببینیم وقتی شما آمدین گفتین مثلا این خانهی که خوشمنظره به شما فروخته یا این منظری که درش این مقدار مثلا این منظری که اینجوری درش خرد شده مثلا صد هزار آجر در یک درشت به کار برده شده فروخت اینا بحثه ای که دارن این است که اگر ما جنسی رو فروختیم آیا اون سمن این که سمن مقصده بر خود جنس میشه تقسیم میشه اینجای بحثی آیا بر اجزا اون هم تقسیم میشه مثلا به ازا آجر و سیم و این هم تقسیم میشه آیا بر شروط هم تقسیم میشه من میگم این خونه رو 200 صد میدم یک هفته برای من نامه بنویسید. حالا نامه ننویشت. بگیم مثلا نامه نوشتن در حدود مثلا 500 هزار تومنه. 500 هزار تومان از میلیون چقدر میشه؟ این تخفیذه. پس یکی اجزا داری، یکی شروط داری، یکی هم اوصاف داری. اینا بس فنیه، لطیفه. در با معاملات بس لطیفه. دفت کردیم یکی اجزا داریم یکی شروط داریم یکی هم اوصاف داریم مثلا گفتم من این حیوان این علاق مثلا یا عصر رو ساعتی چه کیلومتر میره وقتی خردی من رو ساعت 35 کیلومتر این وصفی رو که گفته بود نیست این وصفی که ساعتی چه کلومتی دوه پس یکی اجزا داریم یکی اوصاف داریم یکی هم شروع داریم سوال اینه که آیا این ثمنی که ما ذکر می‌کنیم اگر تخلیفی در این شود تقسیم میشه یا نمیشه مثلا بگم که خونه رو فروختی مثلا این خونه بنا بود که مثلا چند تا اتاق باشه بعد با این دیوار افتاده اصلا دیوار بوده این چند تا اتاق نیست مثلا شده سه تا اتاق برای بوده بینشون فاصله باشه پنج تا اتاق اون جزء نیست تخلف جز تخلف وست تخلف شرط سوال. اگر تخلف شد قسمت از سمن در مقابل اونا قرار میده این بحث در خلال مقاسب مخواهد بحث لطیفی هم هست بحث قانونی در دنیا هم مفرد روشن شد یکی اجزاء یکی شروط یکی هم اوصافه خلاصه نظرات من نمخواهد بحث رو وقتم گذشت. بر اجزاء و بر شروط لایقصت و سمن بر اجزا و بر شروط سمن تخصیب نمیشه بر اوساف فقط رسف و سهه سمن تخصیب میشه بقیه اوساف نمیشه قاعده کدیش آدم اگر گفت این حیوان فروختر معید در آمد به اضایه بشین کم بکن به اضایه بشین اما یا گفت این حیوان فروت هم کیلومتر کلومت سی 35 کلومت به ازای این 5 کلومت نیده این کم بکنیم سوال؟ این حیوانی که 40 کیلومتر میده قیمتش این و 35 کیلومتر قیمتش این قدره, قدره. اون کم بکنیم اون نمیشه به ازای اوساف هم نمیشه الا وسط سهر این البته این وسط هم چون روایت آمده، اگر روایت نکیل به ازا بنام نمیشه پس به از به ایذا شروط و به ایذا اوصاف نمیشه الا واسطه